کتاب افسانه ها و قصه های ملل داستان هایی برای نوجوانان ترجمه دکتر محمد مهدی پور به سفارش کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط برافشه این داستان هر کسی به سزای اعمالش خواهد رسید. عصر یکی از روزها در یکی از جاده ها پیرمرد بیچاره‌ای در حال حرکت بود. آفتاب غروب میکرد و تاریکی شب همه جا رو فرامی گرفت. مرد بیچاره تصمیم گرفت در یکی از خونه های اون حوالی رو به صدا در بیاره و با اجازه صاحب شب رو اونجا بخوابه. این پنجره یکی از خونه های بزرگ رو زد و گفت اجازه میدید امشب در خونه شما باشم؟ ناگهان صاحب خانه از خانه خارج شد و با خشم فوقلاده بنای داد و فریاد گذاشت و گفت چرا در میزنی؟ همین حالا سگارو میفرسم تا بهت بفهمونن که چه جای خوبی برای تو در نظر گرفتم زود باش از اینجا دور شو آبره بیچاره ناچار از اونجا رد شد و به جای دوری رفت و در مقابل خونه کوچکی قرار گرفت و پنجره اونو به صدا در و گفت. و اجازه می امشب در خونه شما باشم؟ صاحب خونه با مهربونی جواب داد بفرمایید امشب پیش ما بمونید البته خواهید بخشید که خونه ما کوچیک و فاقد وسائله آبر داخل خونه شد و اونو کوچک و محقر دید و لباسهایی را که بچه ها به تن داشتند فوقلاده زشت و پاره یافت بعد پرسید چرا لباس بچه های شما این اندازه پاره است؟ چرا براشون پیراهنهای تازه تهیه کنید؟ صاحب خونه جواب داد چطور میتونم چون این کاری بکنم؟ شوهرم فوت کرده و منو تنها گذاشته و منم قدرت ندارم غذای بچه ها رو تامین کنم چطور میتونم پیراهن تازه براشون تهیه کنم؟ آبر حرفهاش رو به دقت گوش کرد و حتی یک کلمه هم حرف نزد. صاحب خونه غذای تهیه کرد و آبر رو به خوردن شام دعوت کرد و گفت حالا بیا غذا بخور. آبر جواب داد نه متشکرم، گرسنه نیستم خیلی غذا خوردم. بعد ساکش رو باز کرد و چیزهایی را که داخلش بود برداشت و به بچه ها بخشید و گوشه ای دراز کشید و به خواب رفت. فردای اون روز پیرمرد صبح خیلی زود از خواب بلند شد و از صاحبخانه خانه سمیمانه تشکر کرد و ضمن خداحافظی گفت انشاءالله هر کاری که امروز شروع کردی تا هنگام شب ادامه پیدا کنه. زن عبارت آبر رو نفهمید و به دعای او توجهی نکرد و او رو تا دم باغ بدرقه کرد و به خونش برگشت با خودش گفت اگه لباس‌های پاره بچه‌های من این پیرمرد رو تا این اندازه ناراحت کرده پس دیگران از این موضوع چقدر ناراحت خواهند شد بنابراین تصمیم گرفت با قطعه پارچه‌ای که در گنجه داشت برای یکی از بچه‌ها پیراهن درست کنه پیش همسایه ثروتمند رفت و از او متر خواست تا پارچه رو اندازه بگیره زن بیچاره وقتی به خونش برگشت پارچه را از میان گنجه برداشت و به اندازه گرفتن پرداخت هر قدر اندازه می گرفت همون اندازه پارچه درازتر می شد و انتهای اون به چشم نمیخورد. او در تمام روز پارچه رو اندازه گرفت و اندازه گیری پارچه تا شب ادامه داشت بعد متوجه شد که پارچه زیادی در اختیار داره به طوری که میتونه در تمام سال‌های زندگیش از اون پارچه‌ها برای خودش و بچه‌ها لباس تهیه کنه. تازه اون وقت به دعا و منظور آبر که گفته بود انشاءالله هر کاری که امروز شروع کردی تا شب ادامه پیدا کنه، پی برد. هنگام شب متر رو به همسایه ثروتمندش پس داد و بدون اون که کمترین چیزی ازش مخفی کنه، تمام جریان رو براش نقل کرد. و به او گفت که با لطف و انایت آبر گنجش پر از پارچه شده همسایه ثروتمند از این خبر خیلی ناراحت شد و به خودش گفت چرا اجازه ندادم پیرمرد آبر اون شب توی خونم استراحت کنه اون وقت رو به خدمت گذار کرد و گفت فوراً اسبی رو به گاری ببند و دنبال آبر برو و او رو به هر قیمتی که شده پیدا کن و اینجا بیار من که بارها به تو گفتم باید به ها و درمانده ها کمک کنی. خدمتگزار بلافاصله دنبال پیرمرد حرکت کرد و روز بعد با او روبرو شد ولی پیرمرد از اومدن به خونه زن ثروتمند امتناع کرد خدمتگزار ناراحت شد و گفت اگه همراه من نیایی بدبخت میشم و اربابم بدون اینکه حقوقم رو بده منو از خونش بیرون میکنه پیرمرد جواب داد پسرم ناراحت نباش حالا که اینطوره با تو میام هر دو توی گاری نشستند و حرکت کردند زن ثروتمند کنار در بود و با بی انتظار اونا رو میکشید. پیرمرد رو با احترام فراوان پذیرایی کرد و با خوش روی داخل خونش کرد و بهش خوراک لذیذ و آشامیدنی زیاد داد و یه رخت تمیزر تمیز در اختیارش گذاشت و گفت بخواب پدر عزیزم هرقدر میتونی استراحت کن. پیرمرد چند روزی پیش زن سربتمند موند. مرتبا میخورد و مینوشید و پیپ میکشید. صاحب خانه گرچه وسایل مرد نیاز آبر را از هر لحاظ فراهم میساخت و نسبت بهش محبت می کرد ولی ناراحت بود و به خودش می گفت چه وقت این پیرمرد متقلب می از اینجا بره؟ او جرد نداشت پیرمرد رو از خونش بیرون کنه چون می ترسید اگه عذرش رو بخواد اون وقت هرچی رو که آرزو می کرد به دستش نرسه و برای همیشه ناراحت بشه صبح روز چهارم پیرمرد با خوشرویی حرکت خودش رو اعلام کرد زن سربتمند به دنبالش را افتاد و او رو بدرقی کرد پیرمرد سر و صدا به سوی در رفت و بدون اینکه صدایی به زبان بیاره از خانه خارج شد زن با ناراحتی پرسید حالا بگو ببینم امروز چه کار باید بکنم پیرمرد آبر به دقت نگاهش کرد و گفت انشالله هر کاری که امروز شروع کردی تا هنگام شب ادامه پیدا کنه زن ثروتمند فوراً به خانه برگشت و میتر را در دست گرفت و به اندازه پارچه ها پرداخت. اما ناگهان عطسه پرسر و صدایی زد و به طوری که تمام مرغای حیات ترسیدند و از جا پریدند. زن ثروتمند تمام روز پشت سر هم با صدای بلند عطسه می کرد. هبچو، هبچو، حبچو! حبچو نمیتونست چیزی بخوره، نمیتونست چیزی بیاشامه و نه استراحت کنه. حتی عدسه مجال نمیداد تا به سوالات شوهرش جواب بده. به هر حال جز صدای عدسه، چیز دیگه ای به گوش افراد خانواده نرسید. تنها هنگام شب بود که عدسهش قطع شد و تونست کمی استراحت کنه.